أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الله اكرمني و الله و آلهن طيبين طاهرين معصومين من العيوب لا ضار بحث شد که بحث واشه رشوه بود که جفته شد که دا در کارمخت رشوه در قاضی چونکه بحثش نیست این نمه کلام در مطالبی که اینجا صورتی داده شد در بحث و اجرد و برد حدیه و برد حدیه معامل محاباتیه یه فکر رو هم به حد کافی توضیحات کافی داده شد زمایت رشوه در مطمئن آمه وجوده در مطمئن ما هم به سند معتولی که پیش ما بچنید اونی که پیش ما هست رشا فل حکمه حلوی که آمه هم یه بحثی دارن شبیه بحث ما هم به کون جودیه اونم دارن که آیا رشا مطلبه یا شامل فقط حکمه مثلا اونا هم دارن که لحنه باقا راشی و مرتشی فل حکم این بحث ما الان نداریم ما اما در مطمئن را راجبی این حدیث آمده ای حدیث مرتشیت یا حدیث مرتشی یا مرتشی فلحک کلمه فلحک نست اما در روایات ما صرف شوی مطلق نیامده اون چیزی که در روایات معتبر ما آمده همش ارشت راست فلحک ارشا در مجموعه روایاتی که ما داریم تقیید شده به فلحک دیگه مثل اهل سنت نیست که افتلافتش روشه بلکه به عکس اونها به مطلع در روایات معتبر ما نیامده از کردن در روایات معتبر آمنه هست لعن الله و راشید المعتشی نیامده امروز اونکه اهروز نگاه میکردن در اونکه اشکال کرده حاکم نشابوری در اهل سنت این حدیث لعن الله و راشید المعتشی روی مبانی خودشون صحیحه چه شیخین بخاری و مسلم این حدی یه من نگاه نکنم یاد سومیا علیمتون سومیا خیلی خرف حاکم از این حد یک عبود مدارم. اما چون متهم بهدونشون این که یه نوزا کماییوات به شیئه داره بایی بودش و یا خودشون تصاحل در تفصیل داره خیلی جا حرفاش عبود ندارن حالا یک شرحی داره که اگر یک خرصتی شد جایی دیگه صحبت این هم راجعه احادیث. احالیست بحث و اجرس و هم توضیحات کافی داده شد رزت رو هم گفتیم که انصافاً هم روایاتی که زیادی بعد رزت رو میکنه بد نیست از خود پیغمبر هم چیزی نه شده و ولو ثابت نشد از زمان بعد از پیغمبر یه مسئله یه رزت رو غازی از زمان, عمد، زمان, عمد، زمان و منتما نمیر و و ظاهرم اشکالی نداشته باشه به کلمات فراغانی بله یه چیزی دیگه هست اون اینکه که خود قاضی یا صحب بله همون که نه دو تا محسی هست البته حالباً آقایان خیال نوهای تلازماتی در اینجا وجود داره تلازماتی ما به این تا هم وکن حق این است که به این تا هم تلازم نیست در ما به هم همینطوره مستحب از امسان هم که قرض کسی رو میده حدیه قرض می کسی رو بده یه چیزی رو حدیه زیادی بده احتمال ارزش پیدا کنه برای او مستحب است چیزی هدیه بده فیزیک و باز برای مقرض کسی که پول قرض داره مستحب است نگیره یو کرنده و هدیه یی این دو تا حکم با هم خود برای یکی مستحب اون دادن هدیه برای مقترض اما برای مقرض یستحب و عدم که جزاء به قدر فرمانه اینی که در راقه بارات محمده کراهیت و اخری هر قدر قدر در قدر آمده، این ناظره به حکم قاضی فی نستهه این که راجب نظام و دستگاه و دولت و حکومت اون جارزه برای منصف و یکی به این که خود قاضی حتی المحضور عباد بکنه و نگیره ولله و فضله این توی روالت ما هم یعنی توی این عبارت اصحاب ما هم آمده که تا فوقش تومشه و پول مانع از آغاز نگیره. تعلیشی، تعلیشی. تعلیشی مجموعیه رواجش. بنظرم شروعات امرمون اگر کل هنیه آخه داره آج مازده. چون آج هم رو به رز کرده. معلومه شیخ، شیخ سدوق رواجش بیا آخه علاقه که داره خود داره که صدق کنی، نه هم که در ایمان. اون چیزی دیگه نگیره. این هم بیده. نه روشن شد نه که جایز نید جایز هست و تو مستحبه برای اون برای غازی چیزی نگیره با افاق و با کفاق خود, خود زندگی کنه از پول بهترمال چیزی نگیره خب این تا اینجا به انتا هم روشن شد که از زمان عمر نقل شده و از در حایات ما هم از امیر المومنی سلام الله علیه نقل شده دو, دو سه جور این نقل ها کلن برمیاره به کتاب جعفریات و نسخه کتاب مختلفه یک نبرش که نسخه هست و رقیه نسخه نیست و همون جماعی وقتش نمیخواد تکرار رو کنیم وقتش تو زیادش داده شد لیکن منحیس المجموع سن روایتی رو که ما در وقت عجربازی داریم همون روایتی که و منها اوجود رو گذار باد حضرت سرمان صورت انواع اون تکیره منها موصیب من اعمال ولات زالمه و منها عذور القضاء این تقریبا میشه واسه همش روشن تر خب جاهشم گذشت منها کوید به و طورن در استادش و منهای روانی حوادثی از که این منها یعنی موصیب من اعمال مرات زالمه منها مراد اینه باشه نه در وقایص یعنی کسی که در درس سال قضایه حن از طرف شطان ظالم اون هم براش حرام است و ذلت است اما که از خواب ما هم معذاره به اطلاق این بواد عمل نکردن چرا؟ چون ما مجموعا روایاتی داریم که اجازه دادن برای شیعه که در این مناسب احنسانست باشن یا منزیر باشن یا خورن حرف بواده زیاده که شیعه بودن تو همین مناسب بودن واری بودن خاضی بودن اعیمه علیهم السلام اجازه داده وقت بناشون اینه که اگر اعیمه علیهم مسلام اجازه دادن تر اون گرفتن پ اون ارتضاع هم دارست یه یعنی اعبارتی دارن که اگر یه چیزی یه لوازمی در خارج آن داشت، اگر خودش بهش تعلیم جل تعلیم بهش تعلیم جل تعلیم نقطهی داشت و اون لواظه بشه هم سرایان می‌کنه. این بنایه درست هم هست خیلی هم شواهد داریم فسی مثلا روایت آرده هم داره میگه شما فقیه خاضیه جل تعلیم آکرانه خب یکی از که حاکم در اون زمان داشت این بود که مثلا ولی و قیم برای بچه قرار مقرار دارم. یعنی همین که جلت و حاکمه یعنی اگر قیم قرار داشت البته اینجا چون به اصطلاح معروض با تلازمه و خب مذکور نیست با شواهد اقافه بشه چون ممکن مثلا کنیم در باب نظر برگزویش را دیده باشیم خب داره که کشف وجد و کفهی میتونه بکنه اون بحث آمده که اگر زم سن از کشف وجد بکنه مردم میتونه بدون ریده بو نگاه بکنه یا بدون شهره ازده ای که بختن میتونه از همین رای ملازمه بیه چون تلازم خارجی برای خیلی زن سوریت باز بود را افتا آمد هست مرد نگاه میکنه پس بنابراین با تلازم ازده ای بیه نو تلازم نداره برای زن کشور جایی است مردم من هم بیازدمشان را. چطور اون یه خوب، اینه خوب. این دو تا خوب ماست. علاوه بر همه می‌گن آن‌ها این همون نزاع معلومی است که در دنیای می‌آید از زمان صحابه الی یوم نه‌هادا هزار تا الی یوم هست هستم. من دیس اختلافش اختلافشون باعث استان کا که آیا در این جا حضورم داره یا البته حالی مثلا من با مثال می‌خوام بگم. بعضی از صورتش کاملا واضحه مثلا اگر فرض کردیم اشتباه نشده این کسی کار کنه هر یک تلازم که باردش مثل کنه مثلا اگر فرض کنیم بسید جالز کشف رجوع کنه آره جالز مثلا مرد لمس بکنه صورتش خب اونجا اتفاق آنجا بود نظرش مرد کلم بکنه لمس استقراطن مرد کلم بیم این تلازم رو دقت کنیم خلازون این نیست که اگر اگر کاری جاید شد تمام محرمان که بهش نیاد نه بزنن تمام محرمان تو بیدن. بعضی از محرمان ظابطه داره, داره مثلا اگر صورت زن باز شد هیچ فرقی فسان رو مردی توستاد چیزن با در هیچ کس محرمی در نظرش بحث کردم بالا محرم با اون پوشش داره ها محرمی که به خاطر اطلاع خارجی با هم یک رابطه برقرار رابطه مثل دیدن اما لم کردن قطعیت که جایز نیست تصور نشه که اگر گفتیم تلازم بگیم تلازم با بقیه محرمات و اگر جایز شد کششش مثلا لفظش میاد <تص> اون میگه ای برقرار شده البته من کرارن و مرارن و سکرارن عرب کردم این تلازمات رو در فقه ما بررسی می‌کنیم. یعنی بنای واقع اصد رو اول تا حالا اینطور شده خوبی قفت می کنیم یه در تلازمات در فقه بررسی می کنم مثل همین تلازم بین کشف ورد و جواد نظر یه در تلازمات هم که اصول بررسی می کنم. مثل اینکه اگر هم به بشه شد مقدمش واجب هست یا نه هم به بشه مخصدیه نه یه از زده شرس کنن این تلازمات تو اصول اولن یه سری از ایزایی که من دیمار بگم هستن شرح تلازمه اینا تو نه تو اصول اولن نه تو فقه اولن اینا خب لطافت دیگه اینا اصدار فقهیه مثل اعانه بر ارسی مثلا انگور می فروشه به یک کارپانه که شراب درست بکنه خود فروش انگور که اشکال ندارد، فروش انگور بیاین کار کنه که تبدیل به شرابش میکنه. یا فروش انگور نفر افرادی که میدونن شراب میخواده. اصلا تا مشتری داره ما معمولا ادیمیانه از شراب انگور میخورن. این یکی رو به خصوص میدونه که تو خونش میاد تبدیل به شرابش میاد. میدونه یک رژیم تبدیل به شرابش میاد. این داره تبدیل به شراب میاد. شراب فروشی نیست. این رو اوردن گفتن به این که حرمت به اصطدا شراب سرعیان پیدا میکنه به حرمت بی، این ترازم و اردن تو قوائل فقهیه اما این درافتای قصوری چیه؟ یه باید کم فکر رو یکی تو فقه یکی توی اصول یکی تو قوائل فقهیه مثل آنه قردی سالان اشاره کردن بکنید مثلا مقدمه واجبی ها مقدمه حرام ببینید مقدمه حرام رو در اصول اما شما شراب انگور بفشید به کسی که کی میخواد شراب بذرسته این تو قبارد که بباردن اون چه در مقدمه حرام چرا؟ باید که شما وقتی انگور رو بردیم به کارخانه شراب فروشی، البته این قیل از این که حالا موضوعشم فرمیکنه نقطه فرمیشم ما توضیح داریم مقدمه حرام در مقدمه فعل خود این موزانه اعانه بر اسم مقدمه غیره این دو سه فرق موضوعی هم دارن، نکات دیگه هم دارن که باید حوامل بحثش بشن. پس این ذراات‌های ها رو خوب در نظر بگیریم. این تلازماتی که در اینجا گفته شده، این تلازمات به اصطلاح فقهیه. میگن اگر شارع گفت من تغییر و منطقی رو قاضی قرار دادم، یعنی من چه نفس قایم می‌کنه؟ نفس رو ولی بحث قاضی رو کنم چون قاضی در زمان اهل این کارا رو می‌کنه. یعنی وقتی از این ها رو توش داره این لوازم رو توی این مطلب داره این جزء لوازم خود این مخلفه نه این کار رو بخواییم و هر حال که ماکان در باب قضاوت هم همین طوره اگر روایت آمد که شما میتوانیم در اعمال بلاس زرم شکلت کنید مفهومش اینه که پول هم که میره میتونیم بگیرید حالا من نمیدونم علی و که وزیر حارم بود همه پولی سو خودش از بیترمال از هارونم گرفتی شد خیلی پولا هم بود واقعا سیدات خوب از آززگیر داشته ظاهرا اینطور نمیدی که تیجاراتی خودش باشه ظاهرا از بیترمال از من هست ولذا از کردیم این شاد سره این بود که صدو فرمود کراهی از و احض در رضا علاقظا اون روایه کن اگه اخو دومن از سلطان علاقظا علاقظا سهت و شیف صدو هم کرد بر کراهران چون اگر اما سلطان سلطان جور باشه قضاوت از طرف او درست باشه پولیش هم, پولیش هم درست باشه پولیش هم اگر قضاوت از طرف اون بیم تلازمه باشه رحبی قضاوت درست باشه لازمه چینه پولیش شما میره آقا ما تو یک دولتی هستیم که مثلا کافران هم یاد اتابه منحرف به دولت منحرف میشه ما این من این ناما توابن دولت باشهم میگهیم بله خب همکه گفتیم بله چینه پولیش هم کارمند شده معناش تصرف در پوله در اون ماهانهی که دازه میشه در اون شهریهی که داده میشه کیفم من مجموعه ادله رو اینجا جمع بکنم راجبه اخذ و عجرت بر قضاوت به این معنا که پولی داده بشه برای اینکه اینشان قضاوت بکنه چند برچه چه حیث و مجموع در کلمات آمده یک وزیه که روشی عالی سارم. مبنای این ورژین است که به شروع نه به بعنای حکم بگیرید هر کجوری که انسان بده ولی اینکه به یک هدفی برست اسمه سرشورد که در کتاب قاموس هم بوده اولشورد جهر ولکه توضیحاتش بودهش معلوم نیمیست تفسیری که ایشان کرده احتمال داره در صلق لغت اینجور بوده داره که یک حیرت عرفیه برشت پیدا شده اون امکریس که انسان می‌ده که حق و کنه باسر را حضر کنه بازی راحت کنه پولی که انسان می‌ده اینو لاهرا آور فرامین می‌کنم. می مثلا یه دو به مطلعل حیوانی رو داری ولی ما اون دو به و با و خاله نمی‌دونیم به مولشش می‌گیم. این که نیست سال بر فرز. یک احتمال هست که من که اینها از قائل بودن مطلقه جول حرام ندرش و شاید از زن این تصویل دوگرد یه احتمال هم داره که واقعا شاید شوید سلوه دوگرد شوارد دوگردی این باشه چون رشاد به معنی ریسمانه رشوه که نما انسان یه ریسمانی می یک چیزی رو می ظاهرش این طور بگید و رشوه شاید با اون معنی اصلی مثل داداینه یعنی مارده بالانه درم ماهی رو داوته نمیگن چون علاوه بر ارثی جو غریاب شده کفتر رو داوته نمیگن تو هر چیزی بوده نه داوته اما الان در داوته مثل چارپا خب چارپا بشی هم یعنی چارپا تو <تصح> در فارسی چارپا معمولا به گاو و گوسفند و الاغ و شتر اینجوری چیزا به فار می‌رن به شیر و گورغو اینا رو میگنون چارپا هستن چه غلطی این اصطلاحیه یعنی لوخامر این مطلبی که ایشون گفت، من هنوزم نمی‌دونم اینه حسابش چیه که ما رو همون تعب نیست. صاحب قاموس چطور شده ریشش رو جول مطرح کرده؟ خیلی معنای عامیانه، خیلی معنای عامیانه. اگر بر فرض این باشه، اگر بر فرض این معنای که ایشون گفت، در صلب لغت باشه، قطعاً معنای اوکریش این نیست. چند شی دلیل دارد که سوال حالا که این ظاهر شی جنس این یک را به وجه اول و عرض کردم و احتیاج املاص الیله در کتبه تازهام عرشودی اینم تناسب کردم این دلیل دومه اینا که روشن می‌شدن روشن ضعیفام و اشکال احتیاج انداصل الیله که من صبح قضاوت باشه ممکن اصلا باب افتاق باشه که ظاهرش همین این روایت هم به کار نماظ مطلب سه که بشتم از سوش شده اجماعی سی در بعد در کلمات آمده راست آمده در کلمات اجماع آمده بلکه طبق نقلی که من کم روز پیش از کتاب مرونی ابن قضا میکردم تو اهل سنت هم ازای اجماع شده اونم قادم خطابی قاله و علیه اجماع و اهل الان پس دعوای اجماع هم پیش ما شده هم پیش اهل سنت شده لیکن حقا یعنی هر دو صاحبه تا پیش ما صاحبه نمید چون سنت هم علاوشه این ما هم علاوشه نمید هم از قدم ها مثل شیخ مفید داریم که اجازه داده هم از منتقیم آقای خویی آقای خویی اجازه داده در رای در مسئله انصافم بینی و بین الله رو بشن میده وچه روایاتی که درشان منها اوجوب القذات کلمه اجر آمده و همچین روایتی که از امیر المؤمنی سرات الله سلامه اومده از دائم اسلام نرسود جواب اینها ها همچین روایتی که از امیر المؤمنی در جعفریاد من از صحت القاضی اجر القاضی در جعفریاد در دو جاشن یه مطنی هست که ما نرسید یه مطنی هست که ما رسیده در هر دو جا اجر قاضی جزء صحبه این وجه دیگه این روایت این روشن, روشن نیست اون عجر قاضی که در روایت روشن اما این کتاب جهت هست خیلی برد روشن نده اما اون روایت همون روزات هم که آن جوابش داده شد اون هم ربطی به آنه ناپی وجه هنجام برای این مسئله تمنصر کردن به این که ازمات ممان قضاوت چیه نختزامه اما شب بود اینجای یه گله مختصری اونایی داره که یه گله بذارین نگا کنید ببینید چرا فوقهای ما چه هم قدیمی‌هاشون هم جنبی‌هاشون اینجا متحرز نشودن که اصولا با این تأکیدی که امام صادق در محل عمر بن دهل دادا قاضی منصوب این نمیکره که رشوه بگیره خون بگیره قره فداواست یعنی زور داره کردن برای حلال نه حرام نه چنین شدان که یعنی رجعت رو حاکمان ف اضافه کن باهوکنات کلمی آهلو باهوکن، فعلی نراد و رضای نو، فحد شرکی الله، یعنی یک تأکید بسیار شدیدی شده. ما بیم از همه عدله نسل قاضی. آقا نه نمی‌تستم از فوقان خیلی آسیب دید. خود ادله نسل قاضی بیم چند امام صلاص الله صلوات علیه نسل قاضی ترند. طرف دیگر هم، در اون زمان وقتی نسخه قاضی میشد جلع اجرت میشد جلع رزق میشد امام چیزی رو معین نکرونده از این اطلاق مقام میفهمیم که چیزی نداره قاضی چیزی در دریاف نداره دلیل بر حرمت نمیشد خب دیگه در مقام این که چون میگم این نفیه از کردم یک تلاظی با خارجیات یاددم. وقتی شما ما به این به ها میاد چاقم قاض که میگه قاضاب بودی سبت شما بر می س پول میگیریم. اصلا که همه اون چاق به بشار ده بشارت بهشار پول که در آن خارجی شما خود رو باید؟ نه ببین ببینخوا اینو بگم یک و سیاقه که اگر کسی خودش رو ولی دونست ارجاع داد به قاضی در عرف اون زمان این بوده که قاضی پول نمیگره. غازی نمیگره. غازی غازی. غازی از نمیگیره قاضی نمیگیره قاضی میدین چه بیداره نمیشه خب نمیدونم به قاضی چون قاضی از بیت المال میگیره شاید صرف این که برزرخت و اجرت و بانون روشوی حساب میکرده هم این چون میگم قاضی پول میگیره، این پوی دوبه چون رو میگه اجرت میگم هم حقوق. اینا چوجو تو پول رو ارزش میدن من ساتیریه بنسوب باشه اینطور ده منسوب نباشه خب ما چون منسوب میدیم حالا بحث تحقیق اومد نه ما میگیم این خوب بود از خواب ما رو این جهت هم یک مانوری نه متعرض نشدند دقیق میفهم آی خویی خنده باشه بعدی ان این تکمیل هم است آی خویی خنده از اون روایت دایعه سوی الله نبی اون, اون شقی و نبی اون از این معلوم میشه که مقام غذابات خیلی مقام مهمیه راست ما ایچیز دیگه هم در همین بحث ساده را اضافه کنیم پلا و رفت لا یؤمنون حتی یو حکمون کفی فیلماشه خیلی حدیث آیه اومانه که اصلا ایمانشون کامل نمیشه مگه یه در غذاب شما مراجعه بکنیم حتی یو حکمون فیلماشه جره بینمه و از اون طرف هم خود منصب قضا یک منصب مهم از اون طرف اضافه بشه بکنی این مجموع اضافه که اینجا قاضی مثلا قضاوت از طرف خدا بکنه حکم الله رو و اگر تفازا انجام بکنه غالبا یغ داخل خصوص داشته که این حکم الله نیست که در اصل جور مجبوری یعنی اونی که به ذهن انسان میاد که این به حکم الله رو حذف بنای اصحاب ما این است که تعلیم احکام واجبه یه فرقی دارن تو اروه هم داره تو منحاج مالوکویی داره بیان احکام شرعیه کلیه واجبه که زیگه آدمه اون رو واجبه بیان هم اما من رو سیدیان بعضی معاستی نوشن دلیل واضحی ندارن پس بر این آقا واجب و معین است که حکم الله رو بیان بخونه من بزیان مطلقت بخونم برزیان رو تأیین قضا و علاقه که چیز قاضی نموشن وقتی انسان این مجموعه وجود و اعتبارات رو خوشت سرهم هم و روش حساب میکنه و این که مثلا پینام برعکر خیلی کم قاضی فرستادن. اینها اینطور انسان احساس میکنه که این منصب و این خصوصیت با جوری باشه که مطالبه مالی نباشه مطالبه مالی اون قداستش رو از ذهن میگنه اجمالا حرف بدینی نیست شما ده اما وصول مجموعه اینها به حدی که انسان تفوا بده به همانت اخذ اجرات مشتبه آخرین هم که شیخ هم اینجا اشاره و بعد مفصلا خواندم که اصولاً در واجبات میشه اخذ اجرات کرد این هم 5 تا 6 تا بچن تا جور 6 تا باشه این مجموعه وجودی که اولش شما در بحث اخذ اجرات در واجبات میاد که انصافش دور این مطلب دلیل واضعی نداریم. انصافش بله اگر از مجموع ادله در که این واجه باید مجانی انجام بشه افراد اوجه حالا یا برای زابطه بزارید. یا اگر زابطه هم نگوشتیم نکاتی از خود لسان دلیل در بیاریم و پس انا برای این اگر بخواد این واجه تمام بشه باید از لسان ادله در بیاریم که غذابتی که از وزان مجانا شابه خواسته الان تو این عدله ما این در نمیشه این عدالت انصافه که این اشاره مجانی خواسته مثل نوبرت لا اصلكم علی اجران الا المواد و الغره قضاوت هم مثل نوبرته لا علیه اجران انصافش حرف بدی نیست اما بر اساس تحدیدهم جی یه مقداری شوری داره. مثلا چمجور که این بحث را زانن علی احرت وجوبن نه حالا فترة. این اینکه قاضی اجرت هم نگیره احتمالش قویه ضعیف نیست ارها نرخیز داره در میان اهل سنت هم مایه هایی بعد اون وقت چند صورت شک کمیونه که بعد اعز میکنیم صورت بعدی هدا یا قاضیه هدیه یا طول قاضیه رزق جوی این صورت شکی داری که بعد عزم. و اما هدیه ای که به قاضی داده میشه این روز از خلی یه حدیثیست که ما هم در بعض از مسادر ما هم آمده از مسادر اهل چونه و در اون هست که حدیث و عمراء حدیث رو امروه رو اشاره آوره بشه از کنم. چون راهگاه که ما از کتاب های متعدد اهلسان نصمی کنیم اینجا میادار تخریج حدیث رو از کتاب نیلول اوتار شوکانی نیلول اوتار خودش شهیست بر کتاب منتقل اخبار بر سعی کرده اکتاب منتقل اخبار خیل رو با حدیث رویه مثل همون مرحله نصورتی ما گفتیم حضرت مسادرشون را میگه. فرقه بلی نیست این شوکانی شوکانی خودش در یمن بوده سال دیگه سیداریس پنجا پنجا پنجا پنج وفاتش و قاضی یمنه استلاحاً اون زیدی میدونه درکه خود زیدی ها اون را سهمی میدونه ظاهراً چی؟ دیگه زیدی ها بوده اما خودش زیدی زیدی نبوده علاقه یاهده چند کتاب داره تفسیر داره غیر تفسیر به مرد مولویت محمد ابن علی شبکانی فضلش خوبه این نگلل اوتارش انصافا کتاب خوبیه این چاپی که من دارم نه جلده این حد 7 تا شه. وجود سه یا چهار جلده 9 جلده در سه مجلدی چهار خوبه نکات فراغان زیاد داره انصافا هم خود متن کتاب مرد است و هم شرحی که ایشان داریم ایشون که یادللو و از هریم قبول راولهجیه از هاتیم های رهاتیم آل عمراء حدیس و هدایت آل عمراء قولون آن. و از فردا آخر من دیروز مخفی بهیهایی دخوندم و بنو علی اب ناعیمیان در از کامر جدی در کامر کوادی. من حدیسه بیومه حمید صادقی. در اون که تا بهیهایی دی دیروز اینو خوندم هدایت آل عمراء قولون. قال الحافظ. در این کتاب های متخرفی این حافظ مرادشون ابن حجر حساب کناب فتخلواری فیشه سهیل بخاری مرد مجای عمد مجمی ولن در وجه اصنا دوزهی کن و در وجه اصنا دوزهی کن ولن در وجه اصنا در اندرو من روایت اسماییل ابن عیاش اند اهل حجاز. و گفتن اسماییل ابن عیاش اگر اهل الحجاز نر بکنن خوب نیست این روز ای هم این ناکه کنم نکردم اون دیوز همی سنب و اخرجه ها سنید ابن داود فی تفسیری هی ان عبیدت ابن است این عبیده از هست اشتباه او قبیده نیست عبیدت ابن سلیمان ان فلان ان فلان و اخرجه ها فی تفسیر مستشابه من حدیث انست به لحظه هدای اموال امال سهتون دیود رو یادم بارتون باشه از که هدای ال امرا هست یکی هدای ال امام و مراد از اموال یعنی کارگزاران حکومتی نه کارگرد پولهای رو که با امان حضیه میدیدن خود این آیه که که قاضی بود. این سفقه بعدشان جلد نو سفقه سال هفتازه سه میکنن بله بله خودش در اینجا میگه که قاضی حدیه قبول نکنه خودش اینطور میگه خودش این طور میگه این. میگه منها دهیه امتنه فران قبول هداریه بعد دخول فرقضا بعد در مصداد قاضی شرف یه حدیه قبول نمیشه لن بله من منکان یهدیوی یهدیغی قبل دخول کسی اونه که بران هدیه میگونه تا قاضی شرف میقبول نکنه بل اغارم. من اله اغاره اغاره هسته از در در خواهر مادر فامیلان قبول نکند فضل انصار ناست فکان پی که من از منافع ما ایلا اختصاص ال مقام چقدر خیرات و برکات در ما داشته ظهور خود این چن پس این هم حدیث هست که عنوان هدایل اماله سختون عنوانی که داره عنوان سخت وقدر لقد رب باب البخاری و فی ابواب القضاء راسته عرض کردم بخاری باقی هدایی آمال درمار رویه نگورده ایش که دو از این درمار نه آمال نه رضا یک حدیث دیگری نغره کرده ابن یا رتویه یا رتویه نمی آنشی حدیث اون شخصی ده که اسم افضالله بوده نغره کردن که این که های تو خونه به بوده خونه پدر مادر بله بعد ایسان یه از ظاهر انال حجیزان و حالتی ته داره رو بزارت و نهبه هم یه نوع منرش این نوعی از ظاهر پس درابر این یک حدیثیست که اهل سنت نهبه کردن هدای الامرا هدایل هدای الامال حلولون این دو حدیث شیش کدومش در متون ما نیامده یکیش اون هدایل الامرا شد ظاهرن توی متون ما آمده و در متون یعنی سندش اهل سنت برمیگرده روایتیه اهل سنت توی کتب معاملات پس این اولا تعبد به اینکه هدایل عمر و ملا عمر یا اگه عمرا بشه که شامل قاضی شه مشکلی موضوع این همونه اشکالی که صادران چند بار من بحث کردم که پیغمبر هدیه قبول نمی‌کرد اون که امیره عمرات تو پیغمبر و قبول نشده و هم قبول هم نکرم میگرم عزیبه بخاری عنوان باب قرار داده اما روایت های برده به شدت از روایت مخالف بوده که حتی عنوان باب قرار داده اما خود روایت هزاین عمر و قلودان ذهب نگرده <تصفح> و با این که ما گفتیم حساباً وسوقی بین این حدیث پیدا نمیشه این راجب لحاظ نقلی بعد بیافتیم روی مسئله یک حدیثی میشه